اون که برتر ندارید شما فردوفسیم چی کتاب من داشتم کتابی دیدم که 2000 سالش بود اگه بیشتر نبود الان هزار سال بالاست که فردوفسی اینو نزد کرده این چه هزار سال این چجوریست؟ اون هزاره قبل اسلام 500 سالش دوره عشقانیست 500 سالش دوره ساسانیست دوره عشقانی امرا نکومت ملوک و توافی بود بعدم فوقما ساسانی سعی کرد اونها آثار زیادی از خودشون به جا نذاشته بودن چون ایلاتی بودن و اونی هم که باقی گذاشته بودن کوشش عظیم کرد دوره ساسانی که اینا رو محرف بنابراین این روایتا چجوری رسیده بود؟ سینه به سینه مردم مردم این روایتا رو حفظ کرده بودن. و بعدین چطور به فارسی درمیاد این این حالا مطلب چیه؟ بردوسی بلند شعری و زیبا شعری، یعنی اون لباس فاخری که باید تن این ربایت ها بکنه اون مال فیبروز. اما ماده خام ماده اول اون مساله که آجر و که میارن پای کار میریزن که بعد ازش خونه بسازن این مساله هم باید طوری انتخاب میشده که مردم بهش اعنایتش دوشن خوشبختانه فردوسی این مساله رو دیده بوده دیده بوده که این, این مطالبی که او میخواد به نظم بیاره مردم دو هزار سال اینو با چنگ و دندون نگه داشتن و از سلط به خلص رسید. بنابراین دیگه در این که موضوع و مطلب مورد علاقه همه مردم هست هیچ تعدیدی چنان که هنوزم تو قلوخونه وقتی که داستان شاهنها رو میان دیزیاد جمع میشن و گوش فرامیدن و لذت می‌برن، اون بالای همون ماجرایی که بوده و هست. عین بنابراین یکی از افصار توفیق فردوسی این بوده که هم زبانش زبانی بوده که هیچ کس دیگه نداشته. حالا بعد خواهم گفت یکی هم که موابدی که ازش استفاده میکرده موادی بوده که تمام مردم ایران اینو از خودشون میدونستن مال خودشون میدونستن اینو سرگذشت خودشون میدونستن هر کدومشون خودشون رو مبذف که این مطالب رو حفظ کنن نگه بدارن بنابراین اگه لباس بسیار زید بایگن تنش میشه چی از این فهتر اینه که توفیق شاهنامه به هر دو دلیل این کار بود علاوه بر این این داستان های ملی داستان‌های حماسی هماسی یک روایت که نبوده ده ها روایت بوده من اینجا باید یاد خیر بکنم از دوست عزیز قدیمی تازه در گذشتهی مرموم انجدی شیرازی یکیگه هفتهی بیشتر از وفاتش نمیگذاره این ستجل کتاب چارسد کنفتت سخیهی تحلیف کرده درباب فردوسی و شاهنامه و مردم یعنی مثلا فرض و در پولان محل این روایت داستان سهراب چجوریه در پولان محل راجب کی کیخوسرو نظر مردم چیه راجب شاهنامه چه قصه های بین مردم هست 1230 هستم و بسیار روایت های مختلف گردواری شده که هست و بعضی از این دقایت ها اعتمالا حتی در دوره فردوسی هم وجود داشت دلائل بسیار هم تارین بس. و فردوسی با اون نبوغ ذاتی که داشته درست حکایت ها و داستانهایی رو انتخاب میکرده که اینا بتونه جابیدان بمینه برای اینکه داستانای گرشاست مثلا در همون روزگاه بوده میتونه و سال بعد از فردوسی اسدی توسی همچهدی خودش اینا رو نزد کرده بنابرای این طوره فردوسی وجود داشت. ولی فردوسی گرشاست رو به عنوان قهرمان کاب نمیکنه، درسته درس نمیخاسته که دو تا قهرمان اسماجیش باشه یکی بیشتر من. یا مثلا اخبار فرامرز دیگران دیگران هست مقادیر زیادی اینا رو فردوسی باعثشو خواب نمیکن یا از بین روایات مختلف یک داستان اونی که به نظر خودش به ذوق خودش بهتر می اومده اون رو انتخاب میکرد تا مقدار بسیار زیادی از عمرش سر این کار میگذره شاهنامه هنجا دو هزار بیته آرا بگیریم چست هزار بیت که خودش بارام گیشت هزار سال این کار میکرده اگر که یو سال هم سی سال سی سال چست هزار میشه هر سالی دو بیت. ماهی کمتر از ست سد اینکه در سال میشون ماهی ما یک کمتر از 23 یعنی مثلا 183 183 تقسیم برسی بیروز کنید به طور ما سهستیم که 6 پیت یعنی ما به این ترتیب اگه ای بخوانم حجمی فکر کنیم فکر کنیم که فردوسی خیلی شاهری کمکاری بوده مثلا کاری نکرده 24 ساعت دادم 6 پیت بگه این چیزی نبوده ولی نه مسئله این بوده است مقادیر بسیار زیادی گرفتاری فردوسی داشته در تهیه این ها در دست آوردن اینا و بدست آوردن راویان بعد مقایسه اینها با همون پیدا کردن بهترین نسخه داستان مثلا داستان رستم و صحراب و کشت شدن پسر به دست پدر که به تفسیر تمام در شانام آمده در هیچ مرجع دیگری نیست تنها جایی که داستان کشت شدن صحراب به دست پدرش وجود داره در شاهنامه است و بعد اگر جای دیگه بعدها اشاره شده فقط اون هم یه کلمه گفتن که بله داستان رستان سهره فردوسی در شاهنامه رو به نظم ولی تو تاریخ تابری نیست تو مسعودی نیست توی کامل ابن عصیر نیست توی تاریخ نیش اینا داستان رستان سهره بسن نیست خب اینا از یه روایت محلی رفیگی رو برده دیگه و به دست آورده و برده حالا منابع فردوسی چی بوده؟ جواب این است منابع فردوسی دو اسم بوده یکی کتبی و یکی شفاهی. منابع کتبیش اون نامه رو ارض کردن من نمی که فردوسی حتما عربی بلد بوده بدون شکل مرد درست خوندهی بوده به طور قطع اما عربی بلد بوده عربی زبان دینی و زبان دولتی و اون روزگار بوده او هم آدمی بوده دهخان به و به خانان طبقه و تحسیل کرده بوده. همونجوری که حالا یکی کسی که تحدیلات دامشگاهی داره به هر حال با زبون کارجی آشنا هست کم یا زیاد وقتا همینطور زبونی که باید باش آشنا بودن از کار علمی زبان عربی اینکه میدونه حالا از خود سیارال مولو که عربی عرب مغفر استفاده کرد یا نکرده من نمیدونم اما در سال 346 هجری قمری بردیس په سالار بوده به نام ابو منصور پسر عبدالرزاق ایرونی بوده حلاقمند به ایرونیگری خودشم بوده و داستان دمنه رودکی رو که هفته پیش عرض کردم دیده بوده و دیده بوده که با این سه هزار به کلیله رودکی اسم امیرنس سامانی جاویدان شد میخواد یک کاری بکنه یاد و ادبه زیادی از راویان داستان ملی رو از شهرهای مختلف جمعایی یعنی هرها میخوانه قناب نام نشون هست چی از کدوم چرکی از کدوم چرکی از کدوم چرکی از کدوم چرک؟ در مقدمه ای که معروف مقدمه قدیم شاهنامه یا مقدمه شاهنامه عبو منصوری دونه دونه این اشخاص رو میگه کی از کجا آوردن؟ کی از کجا آوردن؟ کی از کجا آوردن؟ کی از کجا آوردن؟ اینها هم نشستن، این روایتاش رو نقل کردن بعد ها رو نوشتن و بعد یک کتاب جمع کردن و اسم این کتاب رو شاهنامه رو بشتن. بنابراین در سال 246 کتاب شاهنامه به نصر به وسیله عربون منصور عبدالرزا سپه سالار خوراستان تدبیم شد و به طور هست یکی از منابع مهم فردوفسی در نظم شاهنامه همین کتاب و خودش هم میگه که مردی بود در خوراستان چه بود و چه بود و سیمای مهتران داشت و عمت بلند داشت و چه کرد و اختصار اشاره میکنه به این جمعوری کتاب اما پیش از این کار هم یک کتاب هایی به نظم یا به وجود داشت. یکیش شاهنامه به نام شاهنامه مسعودی مروزی مسعودی اهل مرب. شاهنامه مسعودی از بین کلی در کتاب البود و تاریخ که تحت عنوان آفرینش و تاریخ دکتر شفیه کرکنی ترجمه کرده اونجا میگوید که مسعوبی مروزی منظومه ساخته به نام شاهنامه که مردم خیلی اینو عزیز میدارن جلد زرکوبش میکنن با جواهرات جلدش رو را حراسته میکنن تصدیرها داره خیلی این کتاب با عزت اعترام باشت افتار میکنن و اسم شاهنامه است و بعد تو بیت از اولش و یک بیت از آخرش هم به دست میده که اون دو بیت و اون یه بیت هم پر از تحریف و تحصیفه ولی اگر درستش کنیم و بازتازیش بکنیم و حالا نمیدانم چقدر با حسلم یه اندازه میشه یا نه او این است که اولش بوده که نخستین یه مرد تا آمد به شاهی همون کی اومرد نه حسنین یومرد آمد به شاهی به گیتی در گرفتش پیشگاهی چه سی سالی به گیتی پادشاه بود که فرمانش به هر جایی روا بود سی سال که اومرد بیشتر زندگی ندیش چه سی سالی به گیتی پادشاه بود که فرمانش به هر جایی روا بود این دوبهیت اولشه بیت آخرشم میاره میگه سپری از زمان خسروبانا تو کام خیش راندن در جهانا این هم کام خیش این میبینید که به بحر شاهنامه نیست بحر شاهنامه بحر متحارب فعولم فعولم فعولم فعول متحارب مصمن محصول متحارب میگن بحری رو که هاش فعولون باشه چون چهارت فعولون این برده چهارت فعولون هم اون طرح میشه متغارب مصمن یعنی هشتایی هشت پای فعولون و چون یکی از این فعولون یعنی آخری دومش بریده هست فعولون فعولون فعولون فعول فاول. چون دومش بریده است، میشه متغارب مصمن مقصور و گاهی به وزن فعل این هر دوتا میاد فعولم فعولم فعولم فعول یا فعولم فعولم فعولم فعل فعول که یکیش محضوب یکیش محصول بر متقارب مصمن محصول بر شاهنامه محصولی مروضی هست مفاعیل مفایلون, مفایلون مفایل بر ترانه های روستایی تویتی بابا تمام طرانه در سر و سر ایران از مندر گنابه تا مازندرون و آزرباجون میخونن همه به این وزده و این روش میگن مهر حزج مصدس مخصور حزج باهی حوشنگ باهی حوشنگ, باهی حوشنگ. با زیر حزج به وحری میگن که پایهاش مفایلون باشه مصدسه برای اینکه شیشت مفایلون داره ست این و ست اونگه مخصوره برای اینکه آخرشی مفایل مفایلون مف تمام داستانهای عاشقانه به این وضعی خب خسوشیر نظامی بیسرامی نفخیزدین گرگانی و تمام کتابایی که به فیروگی از ما شاخته شده به این وضعی تمام ترانه های روستایی هم به این وضع یعنی بعدها این بحر حزچ خالبی شد برای داستان های عاشقانه و بحر متقارب خالبی شد برای داستانهای رزیم ترکول و این دو شعر در ذهن قرائین بسیار زیادی هست که ریشه و پایه عربی نداره. و از جمله این قرائین این است که شعراي عرب به این بعد این دو بر شعر خوب اصلا ندارن. یعنی این دو شعر نزد شعراي عرب معروف نیست. بار ماصوديه مروزی شاهنامه در تاریخ سیستان از دو ست شاهنامه دیگه هم شده. یکی شاهنامه ابو علی بلخی یکی شاهنامه اول محجد بلخی از هر کودم اینا یه تیکایی هم در تاکستان نحس شد و همچنین مثلا کتاب گرشاست در اول محجد بلخی که اسمی بره چیستایزش نرود میکنی اینا همه جزه منابع کتبی پردوسی همه منابع شفاهیش هر کردم که رستم و سهراب در هیچ یک از منابع کتبی که باقی مونده به دست ما نیست. خودش هم میگه اولش میگه ز گفتار یکی داستان به پیوندام از گفته فاست. بنابراین این مال کتاب گفتار دهخان دهقان که هر کردم دهقان که ده گان گان نسبتی ده، گان یعنی مال ده اهل ده چنان که بازارگان که باعتد بازرگان یعنی بازاری گهوگان یعنی گروهی دهگان هم یعنی اهل ده ولی دهگانان کشاورز نبودن اینا خورده مالکایی بودند که دستشون چون دهنشون میرسید از یه طرف. از یه طرف هم مثل اون مالک های بزرگ گرفتار فساد ارز کنم که ثروت و نعمت زیاد نبودن خورد مالکی بودن بس شما درمشون میرسید درس نیمیخوندن تحصیلی میکردن علمی داشتن بعد کارهای اداری مملکت تمامش به حسیل این درخانان گرمزه میشد از کارهای پاینتر تا کارهای بزرگتر تا وزارت تا همین هست. سرمونده یه صفاح نصفه ها تحجیز تمام علوم و دانش های عطر خودشون داشتن و حاملین تمدزن ایرانی این طرفه ای و خود فردوسی یکی از این ده در چهار مقاله منسه حکیم عبولتاسم فردوسی از ده آقین توس بود از دهی که آن را پاز خانه اون ده هم هنوز هم هست پاز هنوز هست در بشه این ده بود ده یکی از کارهایی که, که داشتن این روایت نقل روایت مدی این از که بسیار جایی جاها فردوسی مطلبی که میکنه میکنه من اینو از خور دهخان از صفتار دهخان یکی دیگه از رابیان فردوسی موبده موبد یعنی آخوند دین زردوش، شد دین زرد. شد را میره این رو تا قبل از مشروطه در ایران و تا قبل از رنسانس در تمام اروپا و تمام دنیا مدرسه وجود نداشت مگر مدرسه آخوند. یعنی تنها جایی که برای درس دادن وجود داشت مدرسه های اینیست اما مسیحی همینطور، بودایی همینطور، زردشتی همینطور، مسلمون همینطور ایش با این مال قرون جدیده که مدرسه جدید از مدرسه هایی ویژیو داشت قبلا شاهزاده ها رو موبدان تربیت میکردن اساس سر نفوذ عظیم اینا در درسگاه و حکومت اینا یک شمین بود که تمام کارگزارم تمام کسانی که درس میخوندم تمام کسانی که درس به قدم داشتن این رو موبدان میکردن. و از جمله روایته ملی منابراین راهیم میگه به موبد به گونه برداشتیات که رستم بر از بام داشت موبت نارید. یکی دیگه از رابیان فردوسی دوستانش بودن قصه بیژن و منیجه رو که داستان عاشقانه است میگه که معشوق من من در سرای من مهربان دوستی بود من که شب خوابا نمی بود چلی چون شبه روش بسته بفیر نه بحران پیدا نه کیون نه تیر دگرگونه آرائشی کرد ماه بسیطی گذار از بر پیشگاه چه و شب تیره بوده و از کنم نه مرغ و نه راهی زمانه زبان بسته از نیک و بد ماه, ماه چه جوزی بوده به تاکشت بهره شده لاجورت پرده هوا را به زنگار و گرد سپاه و شب تیره بردشت و راق یکی فرش افکنده چون پر رضاق این توصیف اترارامیز فرازتاریکی نشون میده که در این داستان صحبت چاه هست و صحبت زندان هست و صحبت ظلمت هست و صحبت زنجیر هست و صحبت بزنان. بعد این من مون شب خوابم و معشوق بلان شد گفت کار کارم میکنین نسبشت من این خوابت نمیاد گفتم نه من خوابم نمیاد برو نار و ترنج و بهی بیار بهی همون به و ساز رو هم ساز کن و میویشنیم بزنیم و یه داستانی برام بگو که وقت من بگذره میگه یار من به من گفتش که من این داستان میگم ولی به شرط اینکه که چون بشنبی به نظم آقی از دفتر فعلتی به شرط که نظم. گفتم چاش وقتی که دهی میگو سا، این دیگه چند سا، تو گفتی که آرود نیرنگ سا، و داستانو گفتند که بعدا من درست کنم داستان ویژه من. بنابراین اولین سه تا امروزش کوید شدی که یه آنان، یکی مودان، یکی اروپا. و برای این کار برای گیر بردن یه راوی داستان چه فولا خرش کرده چه وقتا تلاف کرده چه نازا کشیده چه عرف های نزید داده اینا خوردن و جواب سیله گوزبند و به همه زندگیشو هزچن بردن و این گوشش به کار نبوده این سودا که به سرش بوده این تمام هستی اینو تسخیر کرده بوده و میگه که ملک و شعرهای قصیده یا زیبایی داره قلوس تیزه فی و فلفرها که اون دفعه توضیح دادم یعنی چون که آمد نوست پیش ماست بعد از چهات شاعر در دربار محمود حرف میزنه چهارتن در یک زمان جستن در دوران سری پنج نوبت کفتن از پرد شاعری جاها به رودکی شد تاغذ این چهارو با و زینبی و عصدی و انصری دهر بر این چاو تن بودماش چشم آتفت چرخ بر این چاو تو مهر مادری در سفر همراه غسرو در هزار همراه شاه شوق خدمت در سر و در در زر ششتری مهرده با خدمت هر نیکو خلامان داشتن با کمرهای مرسط با قباهای زری درست و یه با کنان هشمت که بود جندان اساقید بزرگ مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت برسری بندگان بودند و شاگردان بر استاق تو زن که بودش بر سخن سنجار دوگان سروری من عجب دارم از آن مردم که هم پهلو به در سخن فردوسی پرزام را با انبری انبری هر چند ماشد اوستادی بی, بی بدیل چه زند با اوستاو توس لاف همسری هر چندان قوی آجز شود با معجزه چون کند با دست سر سه هاوی سامری شاه نامه هست می اطراق ور عجم رتبه دانای توسی توصی رتبه پیغمبری گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس بر بر زبان لغت دری جای زبان مادرینی عجب در حافظن فردوس فردوسی بود کو بود میشوبر و نوع گفت او شاعری را شعر سهل و شاعری را شعر سعد شاعر را شعر سخته شاعری را پرپری آن یکی پند و آن یکی عشق مدی آن یکی دوست و شریعت آن یکی صوفیگری بهترین شعری از این افسام در شاهنامه از مدیه و وصف و پند و عشق چون کشتنگری در مقام چاغرزاوی چون فسشتی چرد در در مقام کیموتوزی چون پلنگ بربری دادان ها وسته چون زنجیر فولادین به هم کندران ها با معنا نمایت هم بری با وانوشت از بر هر دادامی نو به نو وسته از اندرز خوش یک دست گلبرگ تری شعر شاعر نظمه آزاد روح شاعر کی توان این نظمه را با افتون فیلمتر گر شاعری مهتر نباشد در منش هرگز از اشعاق او ناوید نشان مهتری ور نباشد شاعری اندر منش والا گوهر نشتوی از شعرهایش بوی والا گوهری هر کلامی باز گوید فترت گوینده را شعر زاقه زود گوید شعر کافر کافری ترجمه به مخبر والا فردوسی بود آن در شهناه و اصلاف آقر والا مخبری ای بر فردوسی و شهناه هرگز نکرد جز کسی نیست عقل از وصنات نقصان بری چه و چه میگه این ددان با سعدی و حافظ همیدون دشمنم هم. که از شروع محمود خلق هم دین بطان بطان آذاری. در نبا افتاق قانونشان به پیچانند پوز از بره بستان دانش پیش گریزند خرید بعد اینکه شوهاه الملک یه, یه در متح گفته بود و یه در متح فردوسی شنیدم از شوهاه الملکو گشت تبعیمان از پاندن شعرش بدین گفتن جری گفت شاقر شتریان در سالماغ افتاق نکین تاریخ نی کاه یقصنی کوپن اون تاریخ این دو بیته 300 یا به سالی کمتر از مادر فزار 329 یاسی 330 یا به سالی کمتر از مادر فزار هم 65 درد آغا داستان گسطری سال 365 نظم شاهنامه شوزند در عوام 400 شد استری شاهنامه اش دیازده سال دیگر شد عمر شاور استرید برسی و پنج سالن در کتاب خیش رنج ماند از رنجی چنان گنجی بدین فهناوری زنده شد دیدان از این شهناور و گرچه شاورش خونه دل خورد و ندید از بخت الا مدبری جود محمودی در آغاز و جهان دیریش بود چون پزم شد گنج راضی رفت ضرب کف ناورد زیرا کار فرماویان بودن بستن چون سکه دل بر نقش ضرب جهفری و بعدم راجب هزاره فردوسی نو برای هزاره فردوسی ساخته و که حالا تا امروز که مثلا تجدیز کردن هست اینجا فردوسی این 35 سال رو تازه مثلا 40 سالش بوده 329 تا 365 330 تا 365 366 سالش بوده که تازه شروع میکنه به نظم شاهنامه و قبل از اونم هم مقدماتش بوده سی و سال هم کار میکنه که بیست و پنج سالش شاهنامه رو تمام میکنه نظم داستانهاشو ده سالیگر هم دخال رتوش و تسهیح و سرودن مقدمات و ارتباط دادن مطالب به هم و ساختن مقدمات هر فصل و هر داستان و ساختن مقدمه اصلی کتاب و تبدیل کردن به ممدوعی که قرار دو بکنه که تا, تا 24 سال تا وقتی تموشده بود هنوز نمیدونست شاهنامه رو به نام کی بکنه که میگه یه جا که من نمیدونم این به نام کی بکنه حال این حاصل عمر این مرد این شاهنامه بوده و باید هم آخر عمره سنه هشتاد سالگی برای یه ذره قرمه و یه ذره جو و یه ذره هیزم محتلی نماندن نمکسود و هیزان نجو نه چیزی فضیده از تا جو فرو دو دست دو پای من آهو گره توی دستی و سال نیرو گره علاقی برا چرخ بلند بگیتی چرا مرا مستمن چه بودم جوان برترم داشتی به پیری مرا خار بگذار مراکاش هرگز نه پروردی ها تو پرورده بودی نه یادردی ولی همون وقت انصوری از سیم دیگتان میزد و از زر آلات ساق خان میسا شنیدم که از فیم زد زر ساخت آلات خان انصوری بعد میگه که منظور اون شعری که در فیقیش خوندیم میگه کنون بشه از آن سیم و ذر می. و از آن قیل دامش به جز دود نیست اخطاری همه اونها اون رو داست ولی امروز اونطوریش نیست به برسیه و این پرند رسته گوه مرحله وشریه در داستان های جمچید و حوشنگ و منوکر و نمینا بلشکرکشی و جنگ عجیب و غریبی که بازش جزئیاتش مثلا در داستان سهراف ها که با میزه چجور کار کردن، با شمچیر چجور زدن، برد و کار بردن نمیدن. اینا نیست چیز. صحبت اینه که آتش چجور مهار شد لباس چجور تهیه کردن حیواناتو رو چجور رام کردن نگه داشتن عرصمت آب چجور کشیدن از روز جویا کردن آوردن زمین رو آخیدن کشاورزی چجور درست کردن چجور از توی کوها آمدن به دشت و مسائل مربوط به آغاز زندگی این بخشش میگن بخش اساطی این اگر جنگی باشه، در ذر به سه، چهار ساعت، سرسش هم میاد و شرح و بست زیادی نداره. بخش هماشی، به خلاف، حال موقعی است که جامعه تشکیل شده مردم مستقر شدن، دارن کار میکنند، دارن زندگیشون نداره میکنند درشته بسیار از هم داشته که که دامداری و حشمداری بوده یکی هم کشاوریگی تل... با... کشاوریگی اینا از یه طرف دو کارواتی کرد از یه طرف باید کارشون رو میکردن از یه طرف هم باید باید جلو حجوم کسانی که از دور راحتاف میریختند به سرشون و مرونهاشون می میبردن، حشمشون رو خارط میکردن، مردشون رو میکشتن، زنهاشون رو از دیر میگرفتن، بچه هاشون رو میبردن، به این ادامه داشتن آچار بعد کسانی که جنبه پهلوانی دارن، یعنی آدمی که اداره میکرد این جامعه رو، حفظ و حمایت میکرد این جامعه رو، و بخش تپاهی کم کم می رو و شعر جنگ و شهر همونسی. این هماسه دو کار میشه یک این که خودشون بتونن خودشون دفاع کنن دوم این که به قول صاحبها بوکنامه یک کاری کن که پیش از آن که دشمن به تو چاشت خورد بر تو چاشت خورد تو بر اون هم گرده باشه این دست پیش بگیرن که پس نیوکی کار کار بخش هماسی اینه بعد میاد تو بخش تاریخی که هر خیرم بخش تاریخی کم و بیش همون نتی در تاریخ‌های اول اسلام هم نوشته شده در تاریخ تبری، مرژ زهب مسعودی، تاریخ همزه اسپانی علف کنم که کتاب دیگه نظیر این هست متعدد که اینا همه چیز همه همون مطالبه مال سوالبی، قرار و اخبار مروک الفورس و هم که دو بار هم به فارسی ترجمه شده نه همون مطالبه فقط دو نکتر با اینجا یارواری کنم یکی این است که بین بخش اساطیری و بخش هماسی خط نیست که بکشیم بگیم که از اینجا این چیز اون دفعه گفتم کم کم بخش اساطیری تبدیل میشه به بخش هماسی مثل سایه و مثل مثل سایه و سایه به این تحضیب مثلا زاده شدن روستن در دوره پاتشای منوکره که پاتشای اساطیری بلی همینطوره بخش تاریخی، یعنی بخش تاریخی هم بخش هماسی که وارد بخش تاریخی این رو خط نداره به علاوه بعضی از پاتران واقعی تاریخی، مقاضی روز تا خیلی نزدیک به اسلام، این مقاضی روز یه افتانه شده مثلا، فرض فرمایید وزیر بسیار معروف، یکی کسی میگم که دیگه هیچ, هیچ کس نباشه اسمی نشیده باشه وزیر بسیار معروف یا بزرگمه. درست اسمش بر ما هنوز معلوم نیست که این وجود باقعی بوده یا وجود افثانی این قبر نداریم؟ یا قصده هایی در نه تنها در داستان اردشی و داستان شاخور زل اکتاف و اینا هتی هایی در باره بحرام گور و انوشی روان امثال اینا هست که مثالبان افثان هست و آمیخته شده باشه اینست که تمام مطالب شاهنامه همزور تبدیلش به طرز غیر و انسوسی درست مثل تبدیل شب و روز که روز به شب تبدیل میشه یه نیم ساعت سرو طول میکشه که شما نمیتونی بگید حالا روزه یا شبه و همچنین وقتی که شب میخواست بشه با تبدیل اینم همیتونی این به طور کلی مطالبی بود که من نه میخواستم عرض کنم در این باب و راجع به حماسه فقط باید بگم که در حقیقت این داستان ها یه مقداریش در عوستا از عوستا گرفته شده یه مقداری از پهلوانان به خود یعنی کسانی که کرسی نشینه پاچهان کیان و پاچهان حماسی هستند اینا تو عوستایستی علیشون نیست روستم علیشون نیست جو جیگو کودر همسایه ها اسمیاشون نیست بعضیاشون ممکنه باشه در نتیجه بعد ببینیم اینا کیا بودن حالا اینجا فقط یه باعث 4 جمله راجع به کل تاریخ ایران بگیم میدونید که تاریخ ایران بوده دوره هخامنشی بعد حمله اسکندر بعد دوره اشکانی که از سال, سال تو کشته بعد دوره ساسانی بعد اسلام مال اون دوره سبل من دوره خامنشی به کلی فراموش شده. هیچ در, در دارتانه هموتی اسم. اسمی ازش نیست و تنها سندی که پیش از اسلام وجود داره و در او از حکام گفته گفت یک کتابی است، مالی یک موارکه سوریانی، کلدانی، به نام ابی، حبول فرج اثنال ابی. این هم عربی می نوشته، هم سوریانی می نوشته، در عربی اسمش اثنال ابی، در در سوریانی اسمش باره برای اینکه بار یه همون به همون ابن عرب کتابی داره بنام مختصر و توول من دارم به عرب. این به اصطلاح روایته یعنی خلاصه شده که کتاب سوریانیش بسیار مفصله و کتاب عربیش مختصر شده همون تعلیف سوریانیشه بنده که سواده سوریانی که ندارم، صحابت عربی هم ندارم صحابت پارسی هم نمیدونم جای ولی به هر حال حرض کنم که اون عربی رو دیدن در اونجا راجب کوروش و داریوش و خشیارشا و اینا حرف میزنه و ظاهراً داره از منابع یونانی و از هرودوت و اونا داشته و این تنها جایی، تنها تاریخیست که ما داریم تاریخ ابنالعبری اگر انشالله رفتی بشه یه جوری که این نسخه ابن لبری ترجمه به فارسی خیلی با ارزش تر خواهد بود از عربیش و عربیش خیلی خلاص هست. اونجا اونجای جور خانچان هست ولی باز هم هیچ کسی اینو نخونده باز هم کسی اینو به چیزی این نگرفته همون کار سنتیشون رو وقتی که یکی دو سال پیجه از اینکه بنده برم به دبستان همون تیشتادیان و کیان و اینا تاریخ و هم ترتیب شروع میشود بنده یادمه که, سال سال که بنده، کلاس پنجم متوسط بودم برای اولین بار تاریخ وزارتی درستان صحبت حقامانشی رو نمیدونم اینا رو پیش البته قبل از او مرحوم مشیر دوله ایرانواسان نوشته بود ولی کتاب درسی هنوز زشته بود کتاب درسی رو 1308 مرحوم با هاو مرچ گرفت و تا هر و تعلیف کردن و داری خصاد نوشت و چاپ کردن و پخش در سراسل کشور و سال پنجام اولین سالی بود که همون جغرافی در بستان چیز شده بود که با جغرافی همون دوره ماد و دوره قبل از اسلام و از اسلام بود و هم تاریخش که پنجام قبل از اسلام بود و ششم و از اسلام پیش از او همون نخستین خدیدی کشور بشود سر پاچان که اون همون بود هر خامنش کلی فراموش شده است هر اسکندر و یه حرفی خواهم زد عجب این است که اشکانیان هم در شاهنامه کلی فراموش در کتابی دیگر هم تقریبا فراموست در این شاهنامه در حلود 22 و راجب دوره اشکانی که طبیلتر از دوره ساسانی حرف زده شده جان کلام در این 22 این یه بیت میگه از ایشان به جز نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدن باطه هم البته یه مقداری در ضمن سرگذشت گذشته اردشیر و روی کار مدنه اردشیر از آخرین پاچه ها اردبانم اردبان هم اسم میبره ولی اون داستان رو کاکل کاکول اردشی میچرده در حقیقت اردبان شخصیت دست دومه در اون. از عشقانیان هم تو سال اما اسکندر این اسکندری سرنوشت عجیب میداره چون خیلی پرخواستات تمام ممالکی که چیز کرده و تصویر کرده و بیسه فکر دو دوستم مرد بعد از مصر و ایران و اونبر و اونبر و تا هند و اینا رفته بود حالا اونم بعضی شک شکل میکنن بنده هم که نبودم اونبر تور ندارم ولی در هر صورت ارز کنم که بعدها که بعد به زخم این مردم خورد مثلا دولت مصر دیش که شیش هزار سال تمدن یه باقای مال دخوره سنگی ساحل دریای مدیترالی بیاد اینجا رو خواهند سفت کنه بره قابل تعمل لبود این است که ای درست کردن که مادر اسکندر اولمپیا بود و زن فیلیپ بود و تا درست درسته بلی یه شخصی بود به نام نکتنبیس مصری جادوگر زبرده است. این به صورت ماری آمد در رختخواب خواب ولمپیا خزید و با هم شد با اون خانم با اسکندر بچه بود تمام این مطالب برای اینکه که اسکندر مصری اومده مصری گرفته این جان کلام در ایران هم قصده جور دیگه جعل شد که <تصفيق> ولی یونانی فیلپوس که بعد کم کم در اسکندرنامه های عوامانه شده فیلقوز این فیلپوس فیل پادشاه دختری داشته ناهیده ها محلط کنم هم که مرافعشون شد و اون چیز میکردن و باید سرکشی میخواسته بکنه و دارا خواسته لشکر بکشه و بعد میونه افتادن و گفتن که نه دیگه که اونم چیز نکنه او شما برای اینکه بستگی پیدا بشه دختری داره و شما این دختری سیاسی در حقیقت و سول و بشه قبول میکنه و دختری میفرستن به شبستان دارا و این دختر یک شب بیشتر در شبستان دارا نمیمونه برای اینکه بوی ناخوشی از رو دهان او مشامش پادشاه میرسه و هرچقدر بازه چیز میکنن که این خوب شده و رفت شد و مثلا دیگه درش چکین شد و پس میشست برای پدرش ولی همون یک شب میگن که این دختر باردار شد و بعد فیلیپ فیلفوس برای پرز بوشی رسوایی گفت این پسر خود منه اسکندر رو بعد هم اسکندر فلتیفیش کرد برای دارای دارا یعنی داراب با با راه درنگ شد کوشید یعنی برادر ملک ایران از برادری رشته برادری که در حقیقت همه این محکمات برای این بود که مفصل ترین جایی که این قصه با شرح و تفصیل بسیار زیاد بسیار تفصیلی و بسیار شیرین باز گفته شده در دارالنامه ابو طاهر فارس اونجا به تفصیل تمام درباره این قصه ت برابر 4 برابره اون تو در شاهنامه فردوسی اومده در این باب طرح این قصه مدتها پیش از اسلام جعل شد. یعنی مردم ایران که عینن با خیلی برخورد بود به رگ حمیتش اینا برای اینکه نشون بدن که نه ملت ماجوسیه ایران دست به دست نشود و پادشاهانی با اون عظمت حالا پادشاه کیان یا یا هخامنشی اونجوری که در واقعیت تاریخش هست بگیری اینا اینجوری به بادرفتن ولی که بگن نخیر این قصد رو درست کردن پیش از اسلام و یه مقدار افثانه هم افثانه های اسکندر سر زبونا بودن از طریق سوریانی و از طریق یونانی یه تایی درست کرده بودن و همین قصده دارسان اسکندر که ارض کردند نیت کنه بیوز این بازیا نسخه سوریانیش آمده بود و پیش از اسلام این قصده رو درست کردن و ایرانیش کردن و بابا رو درست کردن و بوده تا وقتی حتما اعتمال قوی در شاهنامه عبو هم بوده و در جرال برود ابن مغفر هم بوده و فردوسی هم همین قصه رو به همین تحصیب نظم آورده که اسکندر و دارا با هم برادر بودن و اگر به طور خلاصه تمام قصه های مربوط به اسکندر رو بخواهید در اول اسکندرنامه نظامی در اول شهرسنامه روایت های مختلف اسکندر رو با تفصیل که با اختصار نظامی همش یاد میکنه ولی میگه که اینا مزخرفه و من همون رو اختیار می‌خوام که فردوسی اختیار کرده یعنی هم داستان برادری اسکندر دارا و باقی قضیه. قمله اسکندر راجول اسکندر خف هفت یه این زیاد چون افسانه است، ظلمات رفتنش ها به جستجوی آب و حیا، عرض کنم کن که رفتن به جاهایی که درخت سخنگو بودن به چرح شگفتی های دی که یکی از،, یکی از مواد، یکی از اناسر داستان پردازی دوارا بوده از قصده هایی که در چیزای چیزهای شگفتنگیز دنیا کلیه ها و جهاندیدی بسیار بیرد دروغ البته <تصفح> از کنن که اینا کم کم کتاب می شده، می‌شده. می شده و یه سری کتاب هاید در فارسی هست در عربی هم هست نام کتاب های عجایب مخلوقات، این کتاب های عجایب المخلوقات حیمونات و چیزهایی خیلی عجیب و غریب هست با این هم چیزهای هست که حالا خیلی سپاریت به نظر ما ولی صاحب صاحب یکی از این کتاب های عجایب المخلوقات به نام خازی زکریای غزوینی یک کتاب دیگری داره به نام آسار و اخبار العباد یکی که من در گنجو اونجا اول این کتابیام که راجبه نظامی قدیمترین منبعی که راجبه نظامیات میزنه این رو البلاذ اونجا میگه که رفتن در گنجو اونجا نزدیک شهر یه کوهی هست مردم میرن سنگ این کو میکنن سنگ سیاهرو سنگوش میکنن بعد میارن مثل یزوم میسوزونن و من اگر خودم به چشم خودم ندیده بودم و یک کسی به من میگفت که سنگو میارن می میگفتم حتما تو دیوونه ای حالا ما امروز میدون که این سوال سنگ اونتها خوب مصرفش و استعمالش انقدر هم میگیر نشده و سراخش نفت بودن قبل از اینکه نفت نفت بشه و به این تحت یعنی قبل از قصه دارسی و این واضی که نفت بره برای در اختصال جهان سنگ بوده بودرکترین منبع نشد هم کشتی ها، هم کشتیات هم هم کارخونه هم هم فولاتگری ها همه سنگ بوده بعد نفت جای اینا رو میگه به هر صورت حد کنم که یه مقداری از موضوعات و مرخا و جانوران که تو این کتاب اجاز مخلوقات هست چیزایی افثانهی و خیالی است و این ماده بسیار خوبی است هم اینا هم شرح باقی شگفتی های دنیا برای داستان پردازان که قهرمان خودشونو برن اونجا ها بگردونن و این شگفتی ها روش نشون بدن هر جمعه اسکندر میره و در همین شاهنامه، در میره و در همین شاهنامه یه مقداری جاهای شگفتنگیزی میبینه و اسکندر همون رو میره و سایر مسائل و اما عشقانی تو شده کردم که این از ای سال دوره وز اسکندر تا اسمه این بیشترش یعنی که سال دوره ساسانی چهارساد سال شففکات و دوره اشکان این چطور شدید؟ لواب این که اولا حکومت اشکانی حکومت اشایری بود اینا خود نشین بودن و در نتیجه از خودشون آثار قمارت و مجسمه و کسیبه اونا باقی بمیزشتی کم می‌شد. برای اینکه زندگی کوش نشینی نه اقتضای دفتر را سیک می نه اقتضای مذهبی بودن و خوشک مقدس بودن میکنه زنی که صوبه سهر وقت بلند چون اون یه چادری که صوریش رو ده دو کابیدن نارو ار جمع کنه و ببنده و باره خر بکنه و تمام ظرف و بسائل و بساطه و بعدا بچه رو کنه و راب بیفته و ده بار برند دوباره اونجا به با کنه این وقت بودوب گرفتن و کروشو نماز نمی نمیدونن ولی از زالین خلید اصلا البته خیلی ببخشید درست هرزگی هم نداریم یعنی با این که زنهای هشتاده نمازه گوشاده رو هستن هماری میبینن و همین میبینن چونها هیچ وقت چنده نمیشه خیلی خیلی به ممکنه که بگن و تنها ممکن است که افسانه به این صورت استفاق یا که یه جوون یه یه رو بخواد و بعد اگه موافقت مکنن با هم فرا رو خواهم برن ازدباهات کن و برگرزن تمام دید، ارزگی تمام دید. اینا نید خلاصه این, این حکومت عشقانی و این چیز زیادی ازش باقی نمونده اون چه هم که باقی مونده بر طبق سنت ناپسند ممرکت ما که هر سبصده ای میاد سعی میکنه تمام آثار سبصده قطع رو از بین ببره و این همینطور از دوره عشقانی بگیر و همجور ادامه داشته تا جمهوریستان اونه کاجار ها امایدن صفاقی ها رو علشن فعلمی ها امایدن کاجار ها رو این چند طول اماره به زور باقی مونده اینجا اونم کرکش کند. تمام این خیابانه ناصر خطرو و کاخ وزارت داره این همه خوابگان آسانی چوب نگرنش برحاد حرض کنم که بر طبق این سنت ناپسند و اضافه بر این چون محکومت اردشی محکومت ساسانی محکومت دینی بود مفنای دینی داشت یکی از اقوامات بسیار مهم مردشی این بود که دستور داد که عوستار و کم آوری بکنن، چه بکنند چه بکنند به این عنوان که اونا بی بودن یا دیم نرشتن یا اسکندر نسوزنده بود و هر حال حقیقتم این است که زندگی کوشنشینیش هم که عرض کردم خیلی با با دمورستگاه مذهبی و مقدس بودن و رعایت آدابو تصدیبی مذهب نمیتونه باشه به جاملتا معروف یه تاریخ ایرانی نوشته خیلی جالبه به این بخشی که خود شاهدش بوده در دوری خواهجار این دوری فتح ایران اون گوزگار خیلی خیلی خوندنیه میگه که شاسبان خیلی چیز ندارن خیلی تأثیب دینی ندارن خیلی آسان گیرن در سورای مذکب خواهد یه قصه این ها که میگه که خان شاسبانی بود و این میواهد مشکنچه که خیاب بود نفلا نسمش میواهد اونجا و پیشه یه حاجی و سقط بروشی و غنده رو تو تون تفاق و غوره معظوم ماراکان می و میرفت و هی میزه حاجی تو یه روز به شما منطور تو رو کنم اونجا حاجیم هم من کاسه باید من نمیتونم نه بلاخره اصرار ابرام و بلاخره حاجی رو میبرن و چادری برش تحتیل دازن و جای بسیار منظم مرتب بیار شما خیلی خوبی و پذیرایی به نوازی خیلی, خیلی خیلی پشنگی چنان که عاد آجیب میخوابه، میگه صبح من پاشه در موضوع گرفتم و نماز خوندم و حفظ عادت من یه حزب یعنی یه چارمه جز و قرآن رو هر روز صبح میخوندم به صدای گرنم میگو من شروع کردم به قرآن رو یه دفتدم یه شما محکم مو... از پسی برخورده سرم کندم فرگشتم دیدم زن خان پشت و فضاعت که مردی که کی مورد رو قرآن میخونید <تصف> <تصف> <تصف> با دسته جارو داری سر من خان اومد زنکره دورش کرده گوه برو گم شما وی تحبیتی کردی و این فلان عزی حرفا رو براخره راحت کرد و باید به حاج آقا خیلی میخوام شما مهمون عزیز ما بودیم خیلی خیلی عوض میخوام جسایت کردیم من حالا تنبیهش میخوام عزی حرفا دلاجی بعد وقتش که اما خب شما هم اول تحقیق میفرمونید ببینین کسی مرده برگراخت احس کنم که حکومت هردشی چون حکومت دینی بودت دقیقاً برمسای مذهب بود و همون زیاده ردی موهان و اینا بلاخره کلک در نجیب مخالف بودن با عشقانی. و به علاوه اونا حکومت شهرنشین بودن دشمن شدید عشقانیان هم بودن در نتیجه این آثاری که از ما باقی هم نمونده بود چیزی اونچه هم بود سعی کردن که به کلی اینا رو ریشکن بکنن یادی از اینا باقی نمونه در حالی که اینا پاترهان بسیار زلیری بودن بسیاریشون مردا ایران رو خیلی به دقت حفظ کرده بودن خیلی آدم درجه اولی بودن و مردم یادگارهای بسیاری در ذهن خودشون از زلیری ها و فهلوانی ها و چیزهای اینا داشتن اون سورین سردار عشقانی دیگه از بزرگان پاترهانشون همثال اینا و این هر اینجا که اینا از این رفتن یعنی اسمشون از عرفه تاریخ رفت بیرون این شاهزادگان عشقانی تبدیل شدن به قهرمانان همه سه رستم و گیب و گودرز و اینا گودرز و گیب و بیژن اینا همه شاهزادگان عشقانی هستن به صورت فهلوانان کرسین و شین کیان در اومدن یا آقای اما آقای هستی در یوتا الان استاد فارسی آقای لئوناردو و آلیشان به نظرم هم هم هست مقاله های نوشته اینگزیسی درباره باره و بحث میکنه که روستان همون سورن سرداره از بزرگ و تمام مثال هم بحثش رو زیادش اگر بخواید ببینید که این راستانه هماسه چجوری پیلیزی شد ترتیبش که اول مایش از اوستاد بعد هم به مرور ایام قصه پهلوانی های بزرگان و ایران آمده روش و چیز شده و این قصه ها کم تراش خورده سخنگویان، شبها این قصه که باز میگفتن هر کسی زوغی و ای داشتن اونجاهایی که ناستازی داشته و یه خود و قیدی زمخت بوده چنین با زوغ مردم ملایم و مناسب نبوده اینا رو کم میکردم و زیاد میکردم و افثانه ها به این صورت پر آمده اما فروسی هم در این کار بسیار اثر بشته و اینکه بسیاری افثانه ها بوده یه نظارش فردوسی به کلی فرو گذاشته مثلا قصه گرشاست جد بدون هیچ تردیدی وجود داشته تو تاریخ سیستر ذکر کتاب گرشاست از عبالماید بلکی هست باعتم اصد یه توستی پنجه سال بعد نظمش کرده درشت ها شده اتمن اون چیزی که بعضاستای دوتی باشه در بری فروسی بوده ولی نایی برده نخواستی نا شاید نخواسته که دو تا فهلوانه در جی یک در شاهنامهش باشه یکی بیشتر نمخواسته باشه به رستن رو گذاشته یا داستنهای برای فرامر تو دیگران دیگران دیگران بوده که اینا رو فرو یک بذاشته روایت های متعذب درباره همین داستان که فردوسی آورده ها و حتی بعد ازنا نرخوش شده اگر بخواید که بخش ازش اون سه جل کتاب مرموم انجبی شیرازی که خدا رحمتش کنه همین چند روز درجه دشته روان شراد سه کتاب بره به نام مردم و فردوسی مردم و شاهنانه سه اونجا روایت هم مثلا داستان سهراب رو میگه فرض بفرمایید که یه روایت که من بطرگی هم شنیده بودم میگه که روایت هم گفتن که بلایی تو چهل روز نخوابی و اینو بزیر روی یه طور روزت را بری و بیدار باشی این برای چهل روز این خوب میشه و روایت هم میکنه و اینو میزه روزتانش رو را میفته و نه روز را میپنه روز چهلام میبینه یه زنی نشسته یه مباری کانه سیاهی رو میشونه دوما در چی کار میکنی؟ حالا راستانم حضور اگر من که چهلا میکنه داره بطور پوش میگه دارم این کانه ها رو میشونم که بلکه این سیاهیش بره میگه خانم آخه سیاهیی که به شستن سفید نمیشه میگه چطور سیایی به شستن سفید نمیشه همون بچه مرده به دوره زنده میشه اینجا رستان هم بهش برخواده نگوه زمین سا و این زمین سرافی آه کشتون بود اینو من بچهگی شنیده بودم بعد دکتر خالدی مطلق نمیشتون که روایت بسیار قدیمی و ارمنی هست یا یا یا هاشوری یک از این جاها اقوام و اقلیت ساکن ایران که این روایت مثلا از 800-900 تاله پیش تو کتابش نزفت کرد یعنی بسیاری از این روایت ها که بوده با اقسام اینا رو ازوسی فرو گذاشته و بهترین صورت که کار کرده، اشتا آورده، در, در نتیجه این جاودان شده، اونها منجو توی ابوار مردم جاری بوده، بعضیاشون ازگردون خراب شده، هم هنوز باقی مونده، متأسفانه قدیمم که توجهی به این قرار نشه. من یادم میاد که داستان سیاوش گویا که در جوامع الهکایت عفی دیدم، حتی خیلی مختلف، در ولی با مال فردوسی فرق داشت اصلا. چون اون وقت رو فتا نشده بود اون داستان نظر کردم جوان رو فتا و مجلی سخن تواب کردن عنوان روایت دیگری از داستان سیاه باشد. از این رو فراق بود حال نه این است که همین یکی بوده و فردوسی به همین تصیب اما اول فردوسی کاری کرده که هیچ یکی از این هم فردوسی کاری کرده که هرگز کسی به هر دیگه نزدیک ن پیش هستون نشد بعد هستون و یقانه است بنابراین میتونیم این نظر رو داشته باشیم به زارویت تخیزی هم نظر ما میکنه که اگر شانها یه بارم سروده شده بود چنان که یه بارم سروده شده بود محضوظی محضوظی سروده بود باز باز پردوسی بیاید اون رو بسازه تا جا بگم بشه میرفته از جاید این یکی دوبام این که ما میدونیم، که فردوسی بسیار به اون روایت هایی که نعخونی کرده امین موده و حتی گاه کلمه به کلمه بعضی بخشا اصل پهلویش در دسته بخش مقایسه میکنیم میبینیم که خیلی دقت داشته و علت اصله این هم این بوده که فردوسی فکر میکرده که این حقیقتا تاریخ ایران و در نتیجه مثلا فرض فرمایید این نشته که کسی بهش توجه ها نکرده میدونی که همه میدونن حتی از هر آدم تو خیابونم هم توی از که اسفندیار چی بوده میگن روینتم اسفندیار هم میگن روینتم بوده یعنی اطلس دنش کار نمیگه فردوسی در داستان رستم و اسفندیار هیچ جا نمیگه که از خور خوشک اسفندیار روینتم فقط وقتی که با تیر میزنید چشهش میگه تا آنی که گفتی که روینتنم یعنی مزخفت میگفتی بلند آسمان برزن این برزنه یا مثلا شرح جنگ که میده نمیگه که روستم تیر تیر منداخت میخورد به اسفندیار مثل که دیوار خورده میده خورد زمین میگفت تیرهای روستم به کار نمی آمد. یه جوری که مثلا مثل که رو رد علاوه از اینکه اصلا رو هم وقتی میگن یا مثلا شکست نپذیر وقتی میگن این به منظور مبالفت دیگه در حقیقت گوشت و پوست که نمیتونه با فوراز چیز بکنه این از که فردوسی چون یقین داشته که این تاریخه به نظرش معقول نمی آمده که کسی رو این تن بشه او که مثلا نیزه تو گوشت رو یه جور اینو این داسته هم فعورش داده که اگر بهش میگن نه ها تو گفتی رو این تنه؟ به سنجن رو ها نگفتن ببین. خلاص غرط هم اینست که خیلی زحمت کشیده در این کارها داستان اکوان دیو که میگه اولش شروع میکنه یه مظهر مقدمه ای راجب فلسفی که آدم فلسف باس به محب مزهرت میزن که آدم فکر کنی که این پس اصلا سر داستان اکوان دیو ایا فلسفه دانه بسیار آدو ایرم از این حسا بعد بالاخره میرسونه به اینجا که تو مردی را مردم بد ندارد کس سفار. بعد هم میگه که کوان یا جوان خوان اکوان دیوش مخوان اگر فعلوانی نداری یعنی باز میخواد اینو به یه صورتی برش کردونه به صورت معقول جلزه بده درست به این دلیل که فکر میکرده که داره تاریخ منبکت رو منجوم میکنه و لازم که اینطور بود قلاب طور کلی مطالی بود که بگم و خب خیلی زیاد شد خیلی و حق حالا یه 파르데زین به خود شاهنامه منتها هر کتابی که شما که می‌دونید شاهنامه ما از اون استثنا نیست یک مقدمه معمولاً مؤلف می‌نينیسه که من فکر کنم گفتم قبلا که هم حمد خدا و نعت پیران مراد طاقیسو ایش یهو شاه مات تو آجسون نیویشو فرافت و فات فات مات فورترا وقت و وقت مات هم سم کسی رو ورشت بین پارو باید هر که خودش لازم بدونه از قبلی یه کتاب نمونه این چیزها بعد میروه توی در سر آسر عدب فارسی از شعرون هست هر دو یک دونه کتاب هست که اینجور نیست. اون مصنوی مولانا. هست مصنوی بی آغازه و بی انجام بشنو این نی یعنی خودش چون شکایت میکنه از جدایی های پایت داستان آخرشن هیچ داشتن یا قفل هی ولی همه کتبایی دیگه داره و این مقدمه شاهنامه تردوسی بسیار خوبه و جالبه ولی من الان او رو میذارم برای اینکه من میذارم رو مطالعه کنین و احیاناً چیز کنین من بیانم تر تنظریبی که درست فرد بود خوشه به متن شاهنامه و در اینجا قبل از اینکه ایگه یه بارم اینو خوندم حالا دوباره می میخونم من از کنم که تو این را دروغ و فسانه به جای اگر کتاب داره جای صد 13 و صد 14 تو این را دروغ و فسانه مدان به اکسان روش زمانه مدان از او هرچه اندر خورد ماخرت که خورده دگر بر ره رمض معنا برد حالا ما کوشش می‌کنیم که یه مقداری از این راه رمز اینجا تا اونجایی که زورمون میرسه یه خود اگه بشه انشاءالله حل بکنیم میکنیم. میگه که سخونگو یه ده دهخان سخون بوده در تمام شاهنامه کلمه سخن با مثلا مکان با بون قافیه ما که بچه بودیم میگفتن که خب قافی تنگ بوده آورد اولا برای فروزی قافی تنگ نیست یک دوبار میکنه هر جا سر دستر شنگه قافی سخن تنگ بوده نمیشه که بعضها کتابای قدیم پیدا شد که اعراب گذاشت بودن کلمه رو در قدیم طرف از سخن. کم کم در تداغل آم شده سخن خوب سخون با بون خافیه میشه یه فردوسی بود که شعر خودشون نخونده این نمید که سخون این با بون خافیه میشه تنها چیزی که فتحه داره باش خافیه شده کهانه به که اینکه هم کهان بوده ولی بله هیچ شخص مثلا سخن با تن مطلقا خافیه نشده حالا برای این محضبیم رجب گفتم یا نه برای تون از پردوسی از دهخانان سیست کردم حالا اینجا اولش اولش روایت از دهقان کنیم سخونگوی دهخان چه گویت نخست که تاج بزرگی بگیتی که تو که بودان که دیهین بر سرنهاد نداند تسان روزگاران به یاد مگر کس پدر یاد دارد پسر بگوی از ترا یک به یک در به در در ترجم فارسی کلمه بابه در به در یعنی باب باب که نام بزرگی که آور پیش که آبود از آن مهتران مایه پیش اولا صداد تاجی تاج بزرگی یعنی از اولین کلمه که حرف میزنه. اینطور فرض می‌کنه یا اینطور روایت می‌کنه که بزرگتر تا جوزش می‌کنه خب این تا کیشی؟ تا کجور؟ مهملکت که مهملکت, مهملکت نبودی که در چند جایی کش می‌کنی که ما پوست می‌خوشتن، پوست حیبونات رو تنشون کردن قصه وقت از این هست که امسونم، مثل بسیار یک حیبونات که درست جمعی زندگی می‌کنن و به خصوص گله های شکار اینا اون پیرترین و تجریداترینشون رو که شاخهای بلندی هم داره بزرگ شده است. یعنی نشون این از سال پرده هست اینجلوه و رهواجی رو روح تداره میاهد بومی کشه از این بنابار که میوینه آفتی گرفتاری چیزی نیست وقتی که دیزنی اون بر راه میده که دیم. انسان این راه و رسم رو ظاهرا تحلید کرده و دو چیز وصیله و نشانه و سمبول فروری و سرداری و فرماندهی بوده یکی اصا یکی هم تاج اصا هم نشان پیغنبری بوده هم نشان پادشایی احسای موکا مثلا که یه که معجزات داشت چه داشت چه داشته ولی برای اینکه تشبیه میکرد اینا رو به چوپان و چوپان یه چوب هم دستش بود که برای مقابله با گرد و اینا باشه و بعد هم روحسای قبیله یه انسان ها محمولاً این چکارهای گویه که میگرفن که شاخ داشته این کله اینو خود در میبردن اینه میشن رو سرشون و اون شاخهای بلنده دراز برای اینکه عنوان رهبر جامعه شناخته شد و حساب هم هر دو نشان پیشباهی رو پرمونده این کنگره کنگره شدن تاج که تا حتی در همه دنیا کنگره داره میشن اون شاخهای پیچیده اون چیزش که به نشان ده. و این رسم هنوز در ترکیه برقراره که یه چیزی شبیه رسم کوته برنشین در اونجا هست که یه کسی پادشای دروغکی میشه و این پادشای دروغکی هم کله چاختاره پیزه سرش میداره و همچنین کلاه رستم که شاخ دیو سفید هست روش که البته چنین چیزی هیچ جا توی شاهنامه فیضوسی اشاره نشدید مطلقا که روستن معبولاً کله سفید و کند و کرد یعنی برد پاریش استفاده کرد دوم اینکه شاخ داشته ولی این شاخ نشان رهبری و بزرگتری بوده بعدها در داستان جمشید هم می که جمشید عطا داشته و این یومرسن یکی ساج داشته هیچ چی نداشته لباس نبود تاج بزرگی داشت تاج بزرگی یعنی نشان رهبری بعدا میگی که این با روزگاران بسیار قدیمه که فقط پدر بر پدر پسر از پدر بیاد داره تا, تا روزگاران فراموش شده و همینه سخونگوی دهخان چه بود نخوست که تاج بزرگی بگیتید که جوست که بود آن که دیهیم بر سرنهاد همینشی چی نیست ندارد کسان روزگاران بیاد میگه این تاج سرگذاشتن مال روزگاریست که هیچ کس بیاد نداره کهی بیده یعنی قبل از تشکیل هر دولت قبیله های نیمه وحشی دسته های انسان ها که بینادن اون رهبر خبیله که همینانستان لختم بودن این سرش بوده اگر از پدر کس به در یاد دارد سر بگوید تو را یک به یک در بدر. چون این گفت که نام بزرگی که آورد پیش، که آبود از آن مهتران مایه بیش چون گفت پایین تخت و گلا گیومرد آورد و او بود شا. در عوستا گیومرد از گی یا مریتن که گیومارت گیومرد گیومارت کیومرد یا گیومرد در یه در عوستایی یه سه سنفتهی داریم که درست نسید هم در عوض باری داریم هم در فارسی ورسان در هر دو زبان باستانی که ازش نوشته در داری داریم این حرف رو داریم بنابراین این هست گی و مرد تو گینه میشه هم دارم هر دوتا به گی امرتن یعنی انسان فانی انسان مردنی چنین گاکاین تخت کلا، و کلا گی مرد آورد و او بود شد اینجا باید بگم که در میدونید که در ادیان سامی امسان اصل امسانی داره و خداوند او رو ید قطعت کهودش آدم محفر خواهر کرده و در حقیقت از آلم دیگه آمدن به دی این روی زمین این است که هشت آزر همین هم باعث شده که اون عده که طرفتار این فرضی هستند که حیات تذکرات دیگه منتقل شده به زمین این درشون خیلی, خیلی وسیله خیلی خوبیه به چیزای دیگه هم البته هست و حالا کاری ندارم بشه. ولی در سنت ایران باستان آدمیزاد ریشه گیاهی داره و قصه مشی و مشیانه مشی و مشیانه یا مهری و مهریانه که بوته ریواس دقلو بوده که میگه اینا بزرگ شدن، بلند شدن بعد تبدیل شدن به آدم داستانش هست در کتابای دینی به خصوص در, در, در تفصیل کتابای دینی مثل دینکت و بندهشن اینا, و اینا هست اینا. اما چرا این تصور پیش آمده؟ یک گیاهی هست به نام مردم گیاه مردم گیا گریشه این گیا این آدم و من این رو البته کچی ازشتن اما به قدری شواهت داره من اینو یک بار دقام رو میشتن نیدم من در فاریس در یک دواخونه این رو که مواد چیز گذاشته بودن پشت چیز پشت و پشت بیترین که همه ببینن این این آدم حالا من جوزیات شبان خاطرم نیست ولی خیلی شبیه بود و از این مردمگی این تصبر پیش آماده که آدم هم آدمیزاد چیز داشته و بعد بیشه چیز داشته و بعد دیگه این مشکی و مشکیانه بودن و یه مدازی کار کردن سرزشتشون فعلا مورد بحث ما نیست به این دلیل که فردوسی این مطلب رو اصلا نگفته رجوش متعرض نشه بعد میگه که اولین انسانی که به وجود آمد کیومرس بود که سوی سال بیشتر نبود و بعد از مثال نطفه ای از اون جدا شد رو به زمین چکید و بعد نسل انسانایی از او در آمدن این رسمت هم در فردوسی نیست فردوسی کیومرس رو به عنوان اولین انسان و اولین تادشاه میکنه و معروم کریست سمسن متشق دان مارکی کتابی داره درباره همین نخستین انسان و نخستین پادشاه دو گلدم هست یکی از بهترین دو تا از بهترین استاده دا دانشگاه تهران دکتر احمد تفضلی دو استاد قبل از اسلامی در دا دانشقای تهران و با اون تفضلی هم ارتباطی نداره و دکتر جاله آموزگار این دوتا این کتاب مشترکن ترجمه کردن و چاپ شده و من نصحه شو دارم و علاوه میشه اونجا بحث مفصل در این باب کرده به عروض 4500 سطحه و تمام مدارک و حسناد و مطالبی که هست و همه رو رسجو کرده و داده و اگر دوست هم میخواستان اطلاعی در اون باب باشن به اون مسائل روزو میکنن بنده اینجا فقط همین گیومرس رو میگم که میگه سی سال بود و سی سال پادشاه بود و بعدم مرد و بعد و عجب این است که بعد پادشاهانی دیگه همه هستد سال و سال و هزار سال و ولی که میگه سی سال بیشتر بود چون گفت کاین تحت و کلاه بیومرد آورد و او بود شا که خودتون شدو بر جهان کت خدای نخستیم به درون ساخت باز یه که حالا با تحقیقات باستان شناسی و تحقیقات مقبل تاریخ و تحقیقات زمین شناسی که شده ثابت شده است که اولا پشر در شکاف کوه زندگی بود این حد تا اون حد الان ثابت شده است که معلوم دکتر خانلوی کتابی که نوشته بود تاریخ تاریخ نوشته بود برای سال پنجامه سال شیشونه در که بسیار چیز فشنگی هم بود و بنگاه آفتانکنی هم در نهایت زیبایی و تفسیرهای بسیار خوب کتاب چاب کرده بود اونجا هم همین مطلب هست که آدمیزاد اول در شکاف عشق کافکوها دوتا خوز میداشت شاید هم بیشتر از دوتا داشته دوتا دو شما می یکیش این که قدمیزاد لخت برهنه این سردش میشود گرمش میشود طبیعت تحملش ندار در شکاف کوها حواظ صافت قار بود مثلا پنی در ده در جهر زنستون تابس تابسون ها خانک بود زنستون ها گرد و اونجا زنستون طبم این که بشر هیچ وجه نمیتونه در برابر حیوانات درنگی که به مراتب از اون سریع ترودن در از خودش دفاع کنه. میدونید میگه چیه چه کوه که که میپیشید یه جا حیوان در یا نمیتونید راسته دیگه به این ترتیب هم برای حفاظت خودش از خطر قیماناتو درونده و هم برای حفاظت خودش از گرما و سرما و خهر طبیعت بشر افتدایی از کون زندگی کرده و فقط وقتی که آین کشاورزی رو فرا و باید روشی خود رو در دشت ها جستجومی کرد در این حال استعمال ابزار رو هم آموز که اولین و سازه ترینش همونچون دستی بود که هیچ خیبونی ابزار بکار نمی‌بره و مارسیسا خرق آدم و طیبون رو همین می که انسان ابزار رو هستش کرد بنابراین تکامل پیدوشند البته بسیار شده که ابزار خواهد با اون محظم نداشت برحال ابزار خیلی مهم بوده تونه تناخضا برای خواهد شده کنه ابزار رو هست بگیره کشاورزی بکنه اون وقت رو که از کوها سرازیر شد و اومد پایین ولی این اینجا فیدروسی میگوید که وقتی که کیومه است و جهان کد خدا شد نخستین به کوهندر اون ساختار کاملا درست و با مرازین علمی صد درصد یک کلمه هم در روی کد خدا بگم کد و کده به معنی خانه است می کده یعنی می خان کده یعنی بود خان. گاهی به صورت پیشاونده مثل کده که میاد خود کرده و می کده گاهی هم به صورت مثل کت خدا و کت بانی به مورد استعمال هم در پارتی امروز حفظ داره تو دفناه نومبایی هم تاختونی هم تنگکی یه اوتار خوچلوی انبار خوچلو بود آرد رو میاردن زخالی بعد یه کسی بود که شما هم پیشکار این پیشگار آرد و غربیر میکرد و بعد میکشید توی کیسه ها یا کیت های بنزینی یا کیسه تربستید میگذاشت کیسه ها معلوم بود مثلا یه من بود دو من بود نمیدونم چقدر ها چقدر بود و این به این ترتیب میزان پخت اونون باید معلوم میشد تا شب چند تا از این کیسه ها چرا کردن چقدر پخت کردن بعدم وقتی دخل شما برگردونم یا تحویل بگیرن از درد و اون فقط حساب میکردن که چقدر باید برگشته باشید حساب کتاب کنید این داستان چی؟ داستان اون کار اون, اون, اون انباره باشه باید هم کته کته و کته هم کده همچنین انبار زغاله تو خونه ها که میگوستن کته زغاله اون هم کداست هست منی خونه خدا هم به منی استاهب و مالک خانه بر این اصلا چه کدا یعنی مرد زندار به دلیل اینکه که مردا و زنا در زندگی قدیم و هنوز حتی امروز هم در دهات ما تا وقت که شوهر نکردن یا زن نگرفتن که اتاها با خانهش رو میخواهند یه این اتاها دارند همینی هم میخواه. رو میخواهند رو که خاص رو که اصلا میرهد خونه که داشت. داشت دلی پسر وقتی خاص زن میگیره باید یه اتاها و اینکه او با زن جپونیش که نمیتونه پیش به در مادر و خوهر تو و بردر اینه نمیشه این است که بهش میگن کد خدا شد یعنی صحاب اتاق خانوم میگن کد بانو یعنی بانوی خانه هم به همین معنیه خانه و انی اتاقه و این که حالا خونه رو دایی صحاب کار میبرن درست نیست هنوز آشپزخانه یعنی اتاق یکیش آشپس دیمسن مهمونه یعنی میکنه. خونه منی اتاق هست همچنین قهر خانه اونه من با همسید همون چده. در وقتی یه بر جهان کد خدا شد یعنی صاحب و مالک دنیا شد یعنی فرمان روا شد چادشاه شد که خود چند شدو بر جهان کد خدا نخستین به درون ساخت جا سر تخت و بختش پر آمد ز یعنی اولین دست راه دولت و تحسیس قویله و جستیسی مقراراتی بهش حاکم داشته اول از کوف سر تخت و بختش پر آمد ز کوف پلنگینه پوشی خود باز برو اینجا مورد از پلنگینه اون اینه پسمند صفت مثل زرینه و سیمینه و پشمینه و همثال اینا موینه و پشمینه پلنگینا هم یعنی پوست پلنگ منطقه اینجا مراد هر پوس دیه و حقیقت این است که بعد از این که این رو می و می اولا باید پوست رو دقت می ولی نمی شد بخوری حیبونات هم اصلی می چه کارشون رو شیر رو دیدم که گرفته بودی گاف می شید اول با دقی پوست رو زد کنار بعد از اون گوشت رونش که شدخانه داره از اون رو خوردن. پوست میکرده خورده کاملا پوست بود این پوست کم کم خوشکش میکردن استفاده میکردن برن زور لباس دیگه یعنی فردشون بود کنشون میکردن میکاش میکردن و مدت ها هیچیچ چیزی که یه تخته باشه هیچی باشه مثل مثل وقته باشه که نداشتن بنابراین هی به طور مسلم اینا به یه تحقیباتی که من نمیدارن تجاریود پوست به عمل میوردن و تنشو میکردن هم هیچ شک. میکردن بنابراین اینجه که سر تخت و بختش برای آمد به کو خود با گروه بخت قسمت بعدی واز گرفتاری داره یه قدری اینه که دوی داره منفذ یک شیم به به گیتی بر اون او سی به خوبی که خرشی برگاه همی تا زود فرد شاهنشهی که ماه دو هفته در فرد شهر از من توضیح بدم و او یا فره ایزدی که در عرصات خوره نه روز فره و در شده دسپر بر حقیقت الان اگر بخوایم بگیم باید بگیم تایید الهی قدیم هم اصل اصطلاح دیانت و هم اصل سلطنت هر دوش منشه الهی دار و در رتیجه حتی بعضی پاچ ها حالا ما تو هم ش هم عزنیم به با مداره کار نداریم خیح جمشید مثلا میگه میگه هم پاکشاههایی هم منم گفت با پرده ایزدی هم پاکشا هم مودی هم پاکشا هستم هم هم و علامتی داشته که این علامت رو بهش میگن فره ایزدی برای اینکه این علامت محسوس باشه کاملا برای مردم این به در چند مورد مجسم کردم. و ال همونطور که عرض کردم این در حقیقت مثل نوری بوده که همون تایید الهی در حقیقت بود ولی، یک جا میگویند که جمشید وقتی که ناسپاسی پیشش کرد و به روایتی تکبر و منی کرد و در خدایی کرد و به روایت دیگر دروغ گفت و, و حالا جوجه ها چون پیلا کار میگه سره ایزدی سه بار از او به صورت مرغی جدا بار اول گویاد و رو اون فره رو مثل اینکه که به ایزد مهر رسید دوتلا یاده نیست احتمالا تو این داستان جنگ رندر نگاه کنم بار دوتبام چه فره عجیز داداشد به گرشاست رسید و گرشاست دوتا جاویدانان در آمد و بار ست بوم که گدا شد که از پدر و پسر رسید به سریدین و قوله دید بعد میگه صورت یه مرگ صورت باد مثل مرگ شکاری از اینکه داشت جای دیگری در همون داستان اردوان که اردوان که ارچه میزدیم اولا اردوان یه دخته داشته و این دختر عاشق اردوشیر میشه و اردوشیر هم اونجا اردوان بر حقیقت فردش کرده بوده برای اینکه گسارت کرده و دولو پاکشاف به صورتی که برای او قابل تحمل نبوده اظهار وجود کرده و بعد چش کرده بودن ولی خب فرقا دخترک به اون مهر آورده بوده و بعد قرار میذارن و میگن و می که خوشبایتون بشه و ازدواج پرخوندشون رو اعلام کنن و بعد هم فرمولی بر میدنن تحصیباتی و دختره موقع مراسب رو هم تشکیف میده که پلان روز باید بریم و اصلی و مقداریم چیزای سبکبزن و سنگین قیمت با خودشون بر میدارن و میرن خب اول گمسدن دختر منعکس میشه در حرام کاشف و عملی رو میبنم هردشی رو همش یه هم بو برده بودم که نه با هم یه سر و چیزی هم دارم سر و سرشی با هم دارم میتازن با وزیرش میگه که بیا بریم به دنبال اینها بگیریم میان حالا گروهی هم هم که میدونم به هر حال میرسن به جایی و میگن که شما ببخشید با یه میرن میگن که شما یه زن و مردی رو ناییدین اینجا برن گفتن چرا مرد جوان جوانی رو بود ما دختری هم سر کششسته بود و در سر خده می اینا میش سفیدی هم دنبالشون نیکن وزیر باز چیز میکنه که بریم به سرعت میرن و به سه دیگری میرسن باز میپرسن و باز میگن بله دیدیم از اینجا گذشتن مثلا یه ساعت پیش بود و زنوار جوانی بودن سواره اصلی بودن میشیم پشتشون همون یک قدمیشون میده میرن جایی یه واز میپرسن میگن بله دیدیم این زن که سواره یک اصل بودن پشت ترکشون هم میشی سفید نشد وزیر اردوان میگه برگرد اون فرقه ایزدی دستو جدا شد تا بردشی دسته دیگه بسته تمام از اینا مظاهر مادی بوده که برای اینکه مردم حالیشون بشه ولی حقیقت این است که چون این جنبه الهی داشته بعد میگه که وقتی جمشید فره ایزادی از اینجا شد اون وقت بخت ازش برگشت و زهاک به اون غلبی کرد و آمد و متواری شده چشم و این فرره جز اجزای مهم شاهنشاهی است و همون چون این بر حقیقت تایید الهی که تا وقتی که هست پاترها هم پاترهایی داره و وقتی که برگشت دیگه از پاترهایی میفته به اعتقاد خودم هست. این است که که هم به عنوان اولین پاترها برش را همچایی میگه مثل, مثل همون حالی که دور سر پیسی می کشن بل سپن اگه نباشه فر فرا پا ریشه فور و فرو یک چیز هستا یعنی این که به پیش میبره با با نرحال ارسان که اینجا این پرس داشتیم من اینجا ببینم تو وقتی ازش دوده شد یا گرفتن ارسان هم نه خیلی توی این داستان جمعی در دکتا نیست من به هر حال سه بار فرره از جلا میشه و میکنم به همین دردیلی یکی به ایزد مهر میرسه و یکی به گرشاف میرسه و یکی به فریدون و بعد جمچید بدونه فرره میمونه و اشکر همین تا افضو فرر شاهن چون ماه دو هفته رسال و صحیم و میگه که سی سال در جهان پادشاه بود در روایت دینی هم آمده است که چی اومد بی جمره سن سی سال بود و هرکت از همه اون نطقه چکید ازشو بعد هم مشی و مشیانه رویدن و بعد هم این آدم شدن از اون اندار آمد دیت اول از اون همین پرورش این رو هم کردن ایوان هم قرص برم که باید که ایوانو می دویدن دنبالشو دو سرعت و بدبختی و کمین و فلان نا بعد هم کراکش می کنن باز دو برای همین بعد فکر کردن که اگه این حیبونو در دست خودشون داشته باشن گرفتاری بسیار کمتر. تر میشن. حیبونت هم که حالا بعد خواهیم بسید رجبهش یکی حیبونات گوستخارن، حیبونات شکارگرن که بعضی روشون zarar هستن یعنی zarar میرسونن یکی از میوه‌ها که فکرام که مضر نیستن اولا ولی کش مضرن هست اثرات هر دو اینا شروع کرد به چی کردن فایده یکی از اولین میوه‌هاش شکارگری که بحث تربیتات فگ بود خیلی تبع وفاداری داشت و زود با, با انسان اوخ شدو